شنوتو با افتخار تقدیم می کند کتاب شب برای شما برنامه مشیگی برنامه‌ای که داشتیم امشب با بازخوانی رمان ارزشمند بینمایان اثر نویسنده بزرگ فرانسه ویکتور هوگو در خدمت شما از شما دعوت میکنم به ادامه داستان توجه کنید از دستگیری تناردیه اپنین که آشق ماریوس بود و ماریوس قبلا از او خواسته بود نشانی پیرمرد نیکوکار و دخترش کوزت را پیدا کند با زحمت زیاد ماریوس را پیدا کرد و نشانی کوزت را به او داد ماریوس نیز پنهانی به باغ جلوی خانه ژان والجان رفت و کوزت را دید در همین دوران تناردیه و هندستانش از زندان فرار کردند و قصد داشتند برای دزدی به خانه ویلایی و قدیمی ژانالجان دست برد بزند. اپنیم که همان شب در بیرون باغ خانه ژان والجان کشیک میکشید و میدانست کوزت و ماریوس در باغ هستند نگذاشت دزدان به خانه ژانال جان وارد شوند اما بعد به خاطر حسادت نسبت به کوزت تصمیم گرفت کوزت و ماریوس را از هم جدا کند روز بعد در کاغذی نوشت خانه را عوض کنید و آن را از پشت سر جلوی جانوال جان که روی تپه نشسته بود انداخت و فرار کرد. جانوال والجان که قبلا هم یک بار در خیابانی در نزدیکی خانهش تناردیه را دیده بود نگران بود. برای همین تصمیم گرفت چند روز بعد برای مدتی از فرانسه به انگلستان برود و به کوزت نیز گفت برای این مسافرت آماده شود. کوزت؟ شب در باغ موضوع مسافرتش را به ماریوس گفت و ماریوس نیز غرورش را کنار گذاشت و شتاب زده و بعد از چهار سال سراغ پدر بزرگش رفت تا از او اجازه بگیرد و رسما با کوزت ازدواج کند پدر بزرگش دلش برای ماریوس پر میکشید و از آمدن ماریوس دست و خوشحال شده بود اما چون بلد نبود جز با خشونت ابراز محبت کند با دیدن او گفت آه اومدی معذرت بخوای پس فهمیدی اشتباه کردی ماریوس گفت برای چه کاری آمده آقای نورمان از او راجع به وضع مالی خانواده دکتر پرسید و وقتی فهمید دکتری که ماریوس قصد دارد با او ازدواج کند از خانواده معمولی است و چیزی ندارد ماریوس را مسخره کرد و بعد به او پیشنهاد کرد با او فقط رابطه داشته باشد ماریوس که احساس میکرد پینما بار دارد به همسر آیندهش توهیل می کند بار دیگر با ناامیدی و با حالت غر از خانه او بیرون زند سال 1832 پاریس مدتها بود که ملتهب و آماده شورش علیه پادشاه لوی فیلیپ بود. مرگ ژنرال لامارک و تشییع جنازه او که هم در میدان نورد شجا بود و هم در میدس و تنپرستی خوش سخن به کارگران و دانشجویان داد تا تشییع جنازه او را بدل به شورش بزرگ شهری کنند. ارتش نیز با حمله به مردم به این شورش دامن زد و به زودی مردم در کوچه ها و خیابان های پاریس با شعار زندباد جمهوری ده ها سنگر درست کردند تا با ارتش مبارزه کنند. یکی از این سنگرها نیز سنگری بود که دوستان ماریوس و دانشجویان انجمن آبسه در خیابان شانوروری بنا کرده بودند. اتفاقا گاوروش پسر کوچک تناردیه نیز وقتی در خیابانها دنبال کارگران و دانشجویان را افتاد به آنها در ساختن این سنگر کمک کرد و در سنگر ماند. ماریوس تا دو ساعت بعد از دیمه شب در خیابانها پرسه زد و بعد به خانه کورفراک رفت. صبح کورفراک و دانشجویان می‌خواستند به تشییع جنازه ژنرال لامارک بروند اما او به آنها نرفت. ولی چون پاریس شلوغ بود، بوت را که ژاویل به او داده بود برداشت و شب مثل همیشه به باغ رفت تا کوزت را ببیند اما کوزت و ژان بی خبر از آنجا رفته بودند انگار دنیا را بر سر ماریوس خراب کرده بودند وقتی در باغ با ناامیدی و عصبانیت پرسه میزد، پسرک که ناشناسی در تاریکی صدا زد و گفت دوستانش در سنگر خیابان شنوروری منتظرش هستند و بعد در تاریکی گم شد این ناشناس همان اپونین بود اما ماریوس او را نشناخت اپونین که لباس پسرهای کارگر را به تن کرده بود و دائم در آنجا کشیک از سر حسادت تصمیم گرفته بود ماریوس را به سنگر انقلابی‌ها بفرستد تا در آنجا کشته شود روز قبل نیست کوزت پیش از اسباب کشی به آپارتمان سوم ژانوال ژان فوری نامه‌ای به ماریوس نوشت و نشانی خانه جدیدشان را به او داده بود ولی چون نمی آن را پست کند، همراه با پنگ فرانک و اولین نفر ناشناس در آن اطراف داده بود تا نامه را به ماریوس برساند. و این ناشناس همان اپونین بود، اما اپونین نامه را نرسانده بود بلکه به خانه کرفراغ رفته و همراه آنها نیز به سنگر دانشجویان رفته بود، و چون مطمئن بود ماریوس دوباره شب به باغ سر میزند به باغ برگشته بود تا ماریوس ناامید را با پیغام دروغین به سنگر دانشجویان بفرستد، سنگری که همه در آن کشته می شدند. این وز با حال و روز ماریوس که فکر می کرد دیگر به او علاقه ای ندارد کاملا متناسب بود، اما اپونین هم بعد از فرستادن ماریوس به سنگر خود نیز به طرف سنگر دانشجویان رفته بود تا زودتر از کسی که بود، آشغش در این موقع گاوروش که در سنگر به ها کمک میکرد، متوجه حضور بازرس پلیس که قبلاً در ها زیاد دیده بود در سنگر شد و این موضوع را آهسته به آنجل راس، رئیس دانشجویان انقلابی و فرمانده سنگر گفت. ها جاسوس پلیس را که همان جاوهر بود دستگیر کردند و به دستور فرمانده سنگر به تیرکی در کافه پشت سنگر بستند تا آخرین نفر انقلابیها او را بکشد. چون نمیخواستند هایشان را حرام کنند سپس گاوروش کوچولو تفنگ قشنگ او را که قبلا نشان کرده بود با خوشالی گرفت شانوروی از هر طرف ماوسری بود و کسی نمی توانست از آن خارج شود اما ماریوس با زحمت زیاد از پاریس شلوغ عبور کرد و از تنها کوچه باریکی که هنوز باز بود وارد سنگر شد و این درست موقعی بود که ارتش به سنگر یورش برده و وارد آن شده بود و یکی از آنها میخواست گاورش را بکشد ماریوس با تپانچه سرباز را کشت. سپس وقتی چرقید سربازی او را نشانه گرفت و شلیک کرد اما دستی جلو لوله تفنگ سرباز را گرفت و گلوله به ماریوس نخورد این دست دست آپولین بود که میخواست زودتر از ماریوس بمیرد ماریوس که میدید کم مانده سنگر صعود کند مشعل و آب بشکه باروتی برداشت و بر سر نیروهای ارتشی فریاد زد برید وگرنه سنگر منفجر میکنم ارتشیها که جا خورده بودند به زودی از ترس فرار کردند و سنگر نجات پیدا کرد جانوالجان با اساسیه مختصری همراه کوزت و خدمتکارشان به خانه سومی که در خیابان لومارمه برای مواقع خطر اجاره کرده بود، نقل مکان کرده بود. اما کوزت از ناراحتی خودش را تقریبا در اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمی‌آمد. روز بعد جان فهمید در پاریس شورش به افتاده است. نگران کوزت بود و داشت در اتاق قدم می‌زد که نوشته عجیبی را در آینه دید و خوشگرد زد. عزیزم پدرم اصرار میکند فوری برویم امشب ما در خیابان لومارمه شماره هفت هستیم و این همان نامه کوزت به ماریوس بود کزت مرکب خوشکنی را که با آن نامش را خوش کرده و با خود آورده بود از حواسپردی جلو آینه گذاشته بود و نوشته روی آن در آینه منکس شده بود این نامه همه کاخای را که جانوال جان در ذهنش ساخته بود ویران کرد کوزت برای او همه چیز بود. و میخواست او فقط متعلق به وی باشد اما اینک میدید اشل خودخواهانه و پدرانه او به کزد به پایان رسیده است فوری زهنش را کاوید و به همان جوانی رسید که مدت ها پیش در پارک لوکزامبورگ آنها را تقریب کرده بود و کینه ماریوس را به دل گرفت اگرچه اسم ماریوس را نمیدانست. www.shenoto.com ماریوس شب در سنگر میگشت که در تاریکی کسی صدایش زد دلا شد و اپنین را روی زمین دید که داشت درد میکشید و جان میداد اپنین به او گفت که برای نجات جان او دستش را جلو گلوده گرفته است به علاوه برای ماریوس اعتراف کرد که او عاشق ماریوس است و به خاطر حسادت بکزد و عدم علاقه ماریوس به او او را با آن سنگر کشنده تا بمیرد اما چون میخواسته قبل از او بمیرد دستش را جنوی گلوله گرفته است در همین موقع گاوروش در سنگر ترانه ای خواند و اپونین گفت که گاوروش برادر اوست و بهتر از او را نبیند سپس نامه کوزد به ماریوس را که ژان والجان هم در آینه دیده بود به ماریوس داد و چشم از جهان فروب است ماریوس نامه را با خوشحالی خواند. اما چون دیگر نمیتوانست از آنجا نجات پیدا کند ودانامهای به کوزت نوشت و گفت که وقتی نامه به دست او برسد وی در سنگر مرده است و بعد چون هنوز خود را زیر دین تناردیه و خانوادهاش میدید گاورش را صدا زد تا به بهانه رساندن نامهٔ او به کوزت، او را به بیرون از سنگر بفرستد و جانش را نجات دهد سپس خود نیز در دفتر یادداشتش نشانی خانه پدر بزرگش را نوشت و در جیبش گذاشت تا پس از مرگش جسد او را به آنجا ببرند. گاوروش نامه ماریوس را به در خانه ژانبالجان برد. در این موقع جانبالجان که جلوی ساختمان نشسته و در فکر بود به دروغ به گاوروش گفت که او باید نامه را به کوزت برساند و فهمید نامه از سنگر خیابان شنوروری فرستاده شده است. نامه را گرفت و خواند، و از اینکه دشمنش داشت میمرد اول خوشحال شد اما بعد تغییر حقیده داد لباس گارد گاردهملیاش را بتن کرد و با لباس نظامی در تاریکی شب از خیابانهای پاریس و حلقه نظامیان گذشت و خود را به سنگر پیش ماریوس رساند سنگر همه از دیدن ژان جان تعجب و به او شک کردند اما وقتی ماریوس به فرمانده سنگر گفت او را میشناسد، همه از والجان استقبال کردند با وجود این ماریوس نمیدانست چرا ژانوال جان به سنگر آمده است کمی بعد گاوروش ناگان با خوشحالی دوباره به سنگر برگشت و ماریوس از دیدن او عصبانی شد اما گاوروش گفت ژان جان را نمیشناسد. جانبال دو جان دوبار با کارهایش باعث نجات سنگر در برابر حمله نظامی ها شد. با وجود آن او از سر نیکندیشی کسی را نمی و این را انقلابیهایی در سنگر هم متوجه شدند. گاوروش که می دید فشنگ انقلابی ها رو به اتمام است داوطلبانه زنبیلی برداشت و میان های نظامی روی زمین بین سنگر و نیروهای ارتش رفت و فشنگ زیادی جمع کرد. اما در آخرین لحظه گلوله خورد. و در برابر چشم انقلابی ها جان باخت. چیزی نمانده بود که ارتش سنگر را فتح کند. ژاور هنوز به تیرکی در کافه پشت سنگر بسته شده بود. ژان جان که او را دیده بود، پیش فرمانده سنگر، راس رفت و از او خواست به خاطر اینکه دو بار سنگر را نجات داده، کشتن ژاور جاسوس را به عهده او بگذارد. آنژولراس موافقت کرد. اما ژانوال جان برخلاف تصور ژاور، او را به آن طرف سنگر برد. و آزاد کرد و حتی نشانی خانه خود را هم به شاور داد شاور چنان جا بود که موقع رفتن گفت شما منو زج بدید بهتر بود منو میکشتید دوستان عزیز، پنجمین این بخش بازخانی رمان بینبایان نوشته ویکتور هگو با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی به پایان رسید. خدا نگه دارم. منتصر بخش بعدی این پادکست باشید. www.shenoto.com